برتری خفیف و پیشرفت شخصی شما اگر می توانستید با یک حرکت جادویی یک میلیون دلار وارد حساب بانکی تان کنید یا اینکه یک طرز فکر یک میلیون دلاری داشته باشید کدام یک را انتخاب می کردید؟ من یک لحظه هم تعمل نمی کردم. من ترجیح می دهم یک میلیون دلار ارزش داشته باشم تا اینکه یک میلیون دلار در حساب بانکی هم داشته باشم؟ اگر بیپول پول باشم، اما یک طرز فکر یک میلیون دلاری داشته باشم خیلی طول نمیکشد که آن یک میلیون دلار را نیز به دست بیاورم. اما اگر طرز فکر یک میلیون دلاری نداشته باشم حتی با داشتن میلیون ها دلار خیلی طول نمیکشد که دوباره بی پول شوم. درآمد شما هرگز از سطح پیشرفت شخصیتان فراتر نخواهد رفت ممکن است بر حسب اتفاق یا خوششانسی جهشی در درآمدتان داشته باشید اما اگر پیشرفت شخصیتان به سرعت تا آن سطح جدید بالا نرود خیلی زود سقوط می کنید و به جایی برمی گردید که پیشرفت شخصیتان شما را تا آنجا محدود می کند. درست مانند اینکه به یک کش لاستیکی متصل شده باشید مانند برندگان بخت جیمز آلن در کتاب بسیار خوبش در زمینه پیشرفت شخصی به نام تو همانی که می این موضوع را به این صورت شرح داده است. شما به همان اندازه رؤیاهای محدود شدتان کوچک یا به اندازه آرزوهای جاه بزرگ خواهید شد. شما بهترین پیشنهاد برتری خفیف من را می دانید. مطالعه روزانه حداقل ده صفحه از یک کتاب قدرتمند و متحول کننده زندگی. در سراسر این کتاب برخی از کتابهای مورد علاقه را معرفی کردم. به آنها کتابهای مورد علاقه خودتان را اضافه کنید و فهرست خودتان را تشکیل دهید. ساختن کتابخانه بهبود شخصیتان میتواند ارزش منترین و مهمترین سرمایه‌گذاریتان باشد. البته بعد از سلامتیتان. یک راه عالی برای انجام دادن این کار، گوش دادن به کتابهای صوتی است. یک فرد معمولی سالانه حدود 250 تا 350 ساعت را در اتومبیل می‌گذراند. یعنی تقریبا روزی بین چهل دقیقه تا یک ساعت. اگر این زمان را با گوش دادن به مطالب آموزشی و بهبود فردی سپری کنید، در طی چند سال در موضوع انتخابیتان مدرکی معادل دکترا خواهید گرفت. همچنین در طی چند ماه یا حتی زودتر متوجه تغییر دیدگاهتان در مورد زندگی خواهید شد. گوش سپردن به کتابهای صوتی یک ابزار برتری خفیف بسیار قدرتمند است زیرا می زمان‌های زمانهای تلف شده تان را به زمانی بسیار مفید تبدیل کند و بهروری را چند برابر کند وقتی می دوید، ورزش می کنید، به سوی فروشگاه یا محل کارتان رانندگی می کنید یا در صف ایستاده اید، ذهنتان را با اطلاعات و بینش های متحول کننده زندگی تغذیه کنید این کار هم انجام دادنش آسان است و هم انجام ندادنش به همین دلیل است که آن 95 درصد این کار را انجام نمی دهند چند دقیقه زمان بگذارید تا برنامه برتری خفیف خودتان را برای پیشرفت شخصیتان تهیه کنید از زیر این کار در نروید در حق خودتان لطف کنید و افکار ابتدایتان را یادداشت داشت کنید برتری خفیف و وضعیت مالی شما تصادفی نیست که کاوش ما در فلسفه برتری خفیف با داستان سکه ای آغاز شد که هر روز ارزشش دو برابر میشد. جهان مالی یکی از بهترین مکانها برای دیدن قدرت برتری خفیف در عمل است. همانطور که قبلا گفتم مردم گمان می کنند که قدرت بهره مرکب را میشناسند اما بسیاری از آنها واقعا از قدرت آن آگاهی ندارند در حقیقت فقط حدود پنج درصد از مردم واقعا این قدرت را میشناسند. شناسند همانهایی که روی نیمه بالایی منهنی برتری خفیف قرار دارند این یک جمله بسیار زیبا و حکیمانه دیگر از وینس است که کاملا در مسائل مالی شخصی کار دارد پیروزی یک عادت است متاسفانه شکست نیز همین طور است اگر های شکست را در مسائل مالیتان پرورش داده اید، حالا زمان آن است که های پیروزی را جایگزین آنها کنید. تصمیم بگیرید که از دنبال کردن این جمله تأصف بار قانون پارکینسون دست بکشید. هر آنچه را داشتم خرج کردم. انتخاب کنید که جزء آن 95 درصد نباشید. مسائل مالی شخصیتان را موضوعی مهم و حیاتی در نظر بگیرید. از استادان برتری خفیف که در کتاب همسایه میلیونر توصیف شده بودند تقلید کنید مانند مادرم باشید و پایین تر از سطح استطاعت خود زندگی کنید یک برنامه پسنداز کردن متعادل را در پیش بگیرید و از آن تخطی نکنید احتمالا افکار و اندیشه هایی درباره این جنبه از زندگیتان داشته اید. شاید از وقتی که داستان آن مرد ثروتمند و فرزندانش را خاندید، در گوشه ذهنتان در این باره فکر کرده اید. حالا زمان آن است که افکارتان را روی کاغذ بیاورید و یک طرح اولیه برای تحقق بخشیدن به اهداف و رؤیاهای مالیتان رسم کنید. برتری خفیف و حرفه شما شخصی از زیگموند فروید پرسید که مردم برای داشتن یک زندگی شاد و غنی به چه چیزی نیاز دارند؟ جواب او فقط دو چیز بود: عشق و شغل. شغل یکی از معنادارترین و جنبه جنبه‌های زندگی ماست. شغل تقریبا همه ابعاد زندگی روزمره ما را شکل می‌دهد و کاری است که تقریبا هر روز و در بیشتر عمرمان انجام می‌دهیم. نکته قمنگیز کار کردن در جهان آن 95 درصد این است که بسیاری از آنها شغلشان را دوست ندارند. در حقیقت تعداد نسبتاً زیادی از آنها از شغلشان متنفرند. اما آن 5 درصد این گونه نیستند. آنها یکی از بزرگترین رازهای زندگی شاد و طولانی را یاد گرفتند. این که شغلشان باشند. فردا صبح قبل از اینکه به محل کارتان بروید از خودتان بپرسید چرا این کار را انجام می دهم؟ می تواند به دلایل مختلفی باشد، اما جواب شما عموماً در یکی از این دو دسته قرار می گیرد. چون مجبورم، چون خودم می خواهم. اگر با خودتان صادق باشید، جواب شما احتمالاً در دسته اول قرار می گیرد. اگر خوششانس باشید، شامل کمی از دسته دوم نیز هست، خبر خوب اینکه درک جدید شما از روش کار برتری خفیف یا همان فلسفه جدیدتان میتواند شغلتان را درست همانند وضعیت سلامتی، سطح شادی و روابطتان متحول کند. همین حالا چند دقیقه را به تفکر درباره این موضوع اختصاص دهید که در شغلتان به کجا می خواهید برسید. یک برنامه ساده برای شروع تهیه کنید تا در مسیر درست قرار بگیرید. یک اقدام روزانه ساده را نیز مشخص کنید که شما را به هدفتان برساند برتری خفیف و اثر مثبت شما روی دنیا در یک کارگاه معمولی تعیین اهداف اغلب از شرکت کنندگان خواسته می شود که اهدافی را برای سال آینده پنج سال آینده یا ده سال آینده تعیین کنند یک بار در سمیناری شرکت کرده بودم که روی کرد منحصر به فردی داشت، آنها از ما خواسته بودند که برای خودمان اهداف 100 ساله تعیین کنیم. شما چه هدفی را برای صد سال آیندهتان تعیین تعین می کنید؟ فکر می کنید چه نوع اثری می توانید روی دنیا بگذارید که بعد از پایان یافتن زندگیتان دوام خواهد آورد؟ بعد از ترک این دنیا، مردم شما را با چه چیزی به یاد می آورند؟ قبلا از مردم میخواستم که فعالیت اجتماعی و همچنین زندگی معنویشان را مانند وضعیت سلامتی و وضعیت مالیشان به مسابه جنبه متفاوت و متمایز در نظر بگیرند. اما حالا این موضوع را کمی متفاوتتر می‌بینم و سؤال جامعتری میپرسم که همه اینها را در بر میگیرد. میخواهید که زندگیتان چه معنا و هدفی داشته باشد این بزرگترین جنبه زندگی است زیرا همه جنبه های دیگر را دربر بر اجازه ندهید که اندازه و وسعت آن شما را بترساند چیزی که در اینجا به دنبالش هستیم کارهای ساده و پیش پا افتاده است که هر روز می انجامش دهید کارهایی که انجام دادنشان آسان است هرچند انجام ندادنشان نیز آسان است کلیدش این است که زمان زیادی را به این کارها اختصاص ندهید. کارتان را آغاز کنید و توانایی انجام دادن آن به دنبالش می آید. یک مداد بردارید و آن را بنویسید. به یاد داشته باشید که زندگی خودتان است. دوست دارید زندگیتان چه معنا و هدفی داشته باشد. هر کاری که انجام می دهید مهم است. اگر سنگی را درون آبگیری پرتاب کنید، امواج ناشی از برخورد آن با سطح آب پخش می‌شوند و تا رسیدن به دیواره آبگیر پیش میروند. در زندگی نیز اتفاق مشابهی رخ می‌دهد. در بسیاری از موارد شما هرگز این امواج را نمی‌بینید. کلایتشر خیلی قبل از اینکه شانس دیدن موفقیت‌های جانبه من را داشته باشد، این دنیا را ترک کرد. اما این امواج کلاید بود که آن موفقیت‌ها را به وجود آورد. همه ی کارهایی که انجام می دهید مهمند. وقتی به کودکی لبخند می زنید و او را تشویق می کنید، یا اینکه او را سرزنش می کنید و میگویید که بچه خوبی نیست در هر دو مورد شاید اثر این کارتان را ببینید. شما ممکن است موج اول یا دوم حاصل از کارتان را ببینید اما اثر کار شما بسیار فراتر می رود. فراتر از چیزی که می بینید. شما همه ی موجها را نمی بینید. مثلا به شخصی یاد میدهید که روزانه ده صفحه از یک کتاب خوب را مطالعه کند ممکن است ببینید که این کار چگونه زندگی او را تغییر می‌دهد اما به احتمال زیاد نخواهید دید که این کارتان چگونه فرزندان و دوستان فرزندانش را تغییر می‌دهد این امواج همانطور که پخش میشوند بزرگتر و عمیقتر میشوند حتی کوچکترین و ناچیزترین اقدامات خوب یا بد شما اثر موجی مثبت یا منفی به وجود میآورند که اثر فوق بزرگی روی دنیای پیرامونتان خواهد داشت این را نیز به یاد داشته باشید که مهم نیست رؤیاهای زندگی شما چقدر بزرگ و بلند مدت باشند آقایان فوتبال این است این نیز با یک سکه یک سنتی شروع می شود شروع به پیدا کردن سکه های خودتان کنید داستان های شخصی از خوانندگان کتاب آمبرتیل، سیاتل، ایالت وااشنگتن خیلی از اتمام مطالعه کتاب برتری خفیف نگشته بود که تصمیم گرفتیم کار برگزاری سمینارهای بهداشت خونگی رو شروع کنیم کسب و کار ما حالا آدمها و خونوادههای مختلفی رو تو کل دنیا تحت تأثیر قرار داده بنیاد و اساس شرکت ما انجام دادن پنج هدف روزانه است که وقتی بدون وقفه و پیوسته محقق میشه وضعیت سلامتی وزن نگرش و منزلت افرادم متعول میکنه اصول موجود تو کتاب برتری خفیف دقیقا همون روی رویکردیه که ما از اون استفاده میکنیم تا به دیگرون یاد بدیم چطور به سلامتی و وزن ایده‌آلشون برسن. ما به آدما کمک میکنیم تا هر روز تصمیمای کوچیکی بگیرن و به جای تمرکز رو وزنشون بر مسیر تمرکز کنن. یه وعده غذای ناسالم یا انجام ندادن یه جلسه نرمش روزانه نیست که موجب 15 کیلوگرم اضافه وزنتون میشه، بلکه تصمیمای ناسالم هر روزه از که تو گذر زمان جمع میشه جمع میشه باعث اضافه وزنتون میشه. همین اصل تو کاهش پونزه کیلو از وزنتون هم به کار میره. کاهش وزن فقط با یک یا دو تصمیم سالم اتفاق نمیفته بلکه اثر مرکب تصمیمات سالم هر روزه در طول یه دوره زمانی طولانیه که باعث کاهش وزن میشه. الکس کراس، دالاس، ایالت تگزاس. در گذشته در درس خوندن دوچار مشکل بودم و سعی میکردم از اون وضعیت نجات پیدا کنم تو خونه پدرم خوندن روزانه حداقل ده صفحه از یک کتاب خوب شروع کردم اولین کتابی که خوندم کتاب موفقیت برای نوجوانها نوجوانهای واقعی از برتری خفیف میگویند بود عادت مطالعه را تو برنامه روزانم گنجوندم و برداشتن گامای کوچیک و برای بهبود بخشیدن به موفقیت تحصیلیم شروع کردم هم بهتر شد تو پایان سال تحصیلی، جایزه سخت کوشترین دانش آموز مدرسه رو گرفتم. سال بعد، عادت مطالعه ده صفحه از یک کتاب خوب رو تو شبا ادامه دادم. اون سال به خاطر پیشرفت خیره کنندم تو تحصیل یه تقدیرنامه از رئیس شمهور گرفتم. اخیرا هم یه تقدیرنامه برای موفقیت تو آزمون علمی کشوری گرفتم و جزو پنج درصد دانش آموز برتر امریکا شدم. نکات مهم اهداف و رؤیاهایتان هایتان برنامه ساده برای شروع و یک اقدام روزانه ساده را برای هر یک از جنبه های زندگیتان بنویسید. برای بهبود وضعیت سلامتتان برای بالا بردن سطح شادیتان برای بهبود ارتباطاتتان برای پیشرفت شخصیتان برای بهبود وضعیت مالیتان برای بهبود حرفهتان برای اثرگذاریتان روی دنیا